خب اما سه قسمت از درس یعاملو معاملت رباعی اندت تصغیری میگه معامله می شود معامله یه چار حرفی هنگام تصغیر با چه نوع کلماتی؟ الان میگه قانطارتو اسم تصغیرش میشه قنی محبرت محيبره مغربيج مغربيج جعفري جعفيري جعفيري الان هم میگه با چه کلماتی معامله رباعی میشون یعنی بر وزن تعايل درس میشن ها و رباع قرفسا، قرائفیسا، قرفسا نوی نشستنه دیدبان دو یای, دیبان دو, یای دیبان دو یای دیبان یک یا مال خودشه یک یا مال تسخیره دیگه بله دو یای دیبان در اصل دیدبان میدونید به چی میگند؟ به نگهبان میگن در فرسی این کاربورت داره دیدبان ها درست آه، زع... فران زعی زع... فران, فران. فران. خب. چه کلماتی رو ما مثل ربایی تصغیر میبندیم تصغیرشون مثل ربایی هست خودش میگه میگه یوسف غرو تصغیر رباییی لو اسم لحقت بعد اربعه احرف تا اتتانیف خیلی زیبا میگه میگه تسخیر میشود همانطور که ربایی تسخیر میشد هر اسمی که بعد از حرف چارم به او تا اتتانیف الهاق شده باشه مثلا در قنطره قاف و نون و تا را اینا شدن چارتا بعد از چارمی میبینیم چی اومده تا اومده پس هر اسمی که بعد از حرف چارم تایتانیس اومده مثل ربایید شه. انطرا قنیقره فعیل او علفه ممدوده یا بعد از حرف چارم علفه ممدوده اومده مانند اربعا که میشه اربعا او یا نسبی یا یا نسبت اومده مانند مغربی که بعد از حرف چارم که با یا ی نسبت اومده این هم مثل رباعی تصغیر میشه مغیری بی فعیله یا بعد از حرف چارم الف و نون زائدتان اومده اول الف و نون الزائدهان یا بعد از حرف چارم الف نون زائدتان اومده مانند دیدبان که بعد از باک چارمین حرف الف ونون اومده یا زعفران که بعد از حرف چارم چی اومده الفنون. هم دو دبان دیبان زعیف را بعد جان قاعده بعدی رو دوبیم میخونیم عزیز من بعدش بحث و عوض میشه خب این پس شد کلماتی که مثل روایی تراسل می‌شدند